کنون که بر کف گل جام باده صاف است به صد هزار زبان بلبلش در او صاف است بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است فقیه مدرسه دیمه است بود و فتوه داد که می حرام ولی بهز مال او غافه به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش که هر چه ساقی ما کرد عین التاوف است به برز خلق و چو انقا قیاس کار بگیر که سیت گوش نشینان ز قاف تا قاف است حدیث مدعیان و خیال همکاران همان حکایت زردوز و بوریا بوریاباف خمش حافظ و این نکته های چون نظر سرخ نگاه دار که قللا به شب سررااف است. خموش حافظ و این نکته های چون نظر سرخ نگاه دار کهقللا به شهر سررااف است.